خوشبختی. در سالیان دور در دامنه‌های کوه بلند شهری سرسبز و پر رونق به نام هیران وجود داشت پادشاه این شهر باشان بود او پادشاهی دانا و عادل بود و در قلمرو او همه مردم در آسایش و راحتی زندگی می‌کردند در سرزمین هیران درختها همیشه پر از میوه بودند و آب ها هیچ وقت کم نمیشد. کشاورزی و دامپروری رونق داشت و مردم ثروتمند و شاد بودند. اما در افسانه های قدیمی اومده بود که همه این نعمت ها به خاطر پرندهیه که از سالهای دور به هیران اومده. پرندهی بهشتی که با خودش رونق رو به اون شهر آورده و باعث شده همه چیز در سرزمین هیران پر رونق باشه. مردم به اون پرنده خوشبختی میگفتند پرنده خوشبختی روی درخت بیده جلوی قصر پادشاه زندگی میکرد هر روز از صبح تا غروب آفتاب با صدای جادویی خودش آواز میخوند و باعث شادی و لذت مردم شهر از جمله پادشاه میشد مردم هم که اعتقاد داشتن همه خوشبختیشون رو مدیون اون پرنده هستند باهاش مهربون بودند و ازش به خوبی مراقبت میکردند در آن سوی جین تند جینتندرا پادشاه دیگری به نام جاگات حکومت میکرد او پادشاهی شرور و ظالم بود و مردمش رو خیلی آزار میداد جاگات با ارتش بزرگش به کشورهای همسایه حمله میکرد و اونها رو قارت میکرد یک روز به طور اتفاقی از سرزمین هیران رد می شد از اون همه زیبایی و سرسبزی تعجب کرد وقتی به قصر خودش برگشت وزیرش رو صدا زد و به او گفت امروز برای اولین بار به طور اتفاقی از سرزمین هیران رد شدم اونجا خیلی زیبا و پر پرونقه انگار که قطعه ای از بهشته چرا سرزمین ما انقدر سرسبز و زیبا نیست؟ چرا باید اونها از رونق و شادی لذت ببرند و ما همش در حال جنگ باشیم پادشاه جاگاد اخماشو توی هم کشید و خیلی ناراحت بود دوباره به وزیر نگاه کرد و گفت جاسوسی به هیران بفرستید تا بفهمیم پادشاه اونجا رو چطور به این خوبی اداره میکنه وزیر همونطور که پادشاه دستور داده بود جاسوسی را به ایران فرستاد. بعد از چند ماه جاسوس به قصد برگشت و گزارش داد. سرورم من متوجه شدم که افسانه های قدیمی ایران این رونق و خوشبختی رو به خاطر یک پرنده می دونن. پادشاه جاگاد با تعجب صداش رو بلند کرد و گفت چی؟ یک پرنده؟ جاسوس گفت بله سرورم. اون یک پرنده جادویی و در افسانه ها اومده که با آواز خوندنش خوشبختی و رونق رو به سرزمینی که توش زندگی میکنه میاره. پادشاه با شنیدن این خبر به وزیر گفت ارتش رو سریعا آماده کنید. باید اونجا بریم و اون پرنده رو به زور از اونها بگیریم. اما وزیر پادشاه رو منصرف کرد و گفت سرورم نیازی به جنگ نیست. ارتش ما به خاطر جنگ های زیاد خسته شده و آمادگی جنگیدن با اونها رو نداره. اما ارتش هیران بسیار قوی و آماده است. اگر به اونها حمله کنیم حتما شکست میخوریم. من نقشی بهتری دارم که بدون جنگ و خونریزی، اون پرنده رو به اینجا بیاریم. بعد به پادشاه جاگاد گفت شما باید پیش پادشاه دارشان برید و از اون بخوایی تا پرنده خوشبختی رو مدتی به شما قرض بده. از اونجایی که دارشان پادشاه مهربونیه حتما درخواست شما رو قبول میکنه. پادشاه جاگاد موافقت کرد و بعد از چند روز با هدایای زیاد به سرزمین هیران رفت. دارشان به او خوش آمد گفت و به گرمی از او پذیرایی کرد. بعد از چند روز وقتی که جاگات میخواست اونجا رو ترک کنه به پادشاه دارشان گفت شما پادشاه قدرتمند و مهربانی هستید. من از شما درخواستی دارم. پادشاه دارجان لبخندی زد و بهش گفت چه درخواستی داری دوست من هرچی که باشه قبول میکنم؟ جا نزدیک نزدیکتر رفت و گفت اگر ممکنه پرنده خوشبختی رو چند روز به من قرض بدید چند روزی میخوام ازش استفاده کنم تا سول و شادی رو به سرزمین من بیاره اون رو به شما پس میدم پادشاه دارشان از شنیدن این درخواست تعجب کرد بعد با مهربانی لبخند زد و به قولش عمل کرد اما پادشاه از دور شدن پرنده غمگین شد چون که اون به پرنده عادت کرده بود به هر حال پادشاه داشوان پرنده خوشبختی رو به جاگاد داد و اونها بلافاصله از هیران خارج شدن به محض اینکه جاگاد به قصرش رسید پرنده رو توی یه قفس طلایی زندانی کرد وزیر به او گفت سرورم شما نباید اون رو توی قفس زندانی کنید اون عادت داره پرواز کنه و آزادانه هر جایی دلش میخواست بره اما پادشاه شرور به حرف هیچ کس گوش نداد پرنده روزهای زیادی درون قفس بود و هیچ آوازی ازش شنیده نمیشد. اون خیلی غمگین و آزرده بود و هر چه سعی می‌کردند بهش غذا بدهند فایده‌ای نداشت جاگات از این وضع خیلی عصبانی بود. اون میدونست اگر پرنده غمگین باشه آواز نمیخونه. و اگر آواز نخونه از خوشبختی خبری نیست. بنابراین به معبد بزرگ شهر رفت تا شاید پیرمرد مرد مرتاز بتونه راه حلی رو به اون نشون بده. وقتی به معبد رسید پیرمرد مرد مرتاز با موی بلند و ریش سفیب با چشمان بسته نشسته بود و داشت نیایش میکرد. جاگات جلو رفت و گفت من پادشاه هستم و بهت دستور میدم که راه حلی برای مشکل من پیدا کنیم. پیرمرد چشماش رو باز کرد و به جاگات نگاه عمیقی کرد. در چشمان پیرمرد قدرتی وجود داشت که پادشاه هرگز ندیده بود. با اخم صداش رو بلند کرد و گفت: ساکت شو ای نادان، من میدونم مشکل چیه. نمیخواد چیزی بگی. پادشاه با تعجب و عصبانیت گفت: چطور جرأت کنی به پادشاه بگی نادان؟ بعد دست به شمشیر برد و خواست بلند بشه که پیرمرد دوباره سر اون داد زد. گفتم ساکت شو و بشین. چطور یه شاه میتونه انقدر احمق و خرافاتی باشه؟ من همه چیز رو درباره تو و اون پادشاه دارشان میدونم. آیا تو واقعا فکر میکنی که خوشبختی اون سرزمین به یه پرنده مربوط میشه؟ بعد اخمش رو در هم کشید و گفت چیزی که اون سرزمین رو جادو کرده و باعث موفقیت و رونق اونها شده اعمال نیک پادشاه داشانه، نه یک پرنده معمولی. و توی نادان اون رو دیدی تا خوشبختی رو برات بیاره. بعد کمی آرومتر شد و دوباره گفت داشان پادشاهی مهربان و عادله اون به مردمش نیکی میکنه و با تلاش و کوشش سرزمینش رو میسازه. اما تو در همه زندگی چه کردی؟ پادشاهی ظالم و مغرور که هیچ چیز بلد نیست جز غارت و کشتار و بیعدالتی. به جای این کارها بره یه نگاهی به سرزمین هیران بنداز. ببین آیا زرهی ای آرامش و نظم اونجا در نبود اون پرنده به هم خورده؟ اونجا هنوز هم آرام و رونقه اما مملکت تو حتی با اومدن اون پرنده ذره ای هم تغییر نکرده. جاگاد با حرفای پیرمرد به فکر فرو رفت. اون راست میگفت در سرزمین ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده بود. وقتی به کارهای خودش فکر کرد فهمید که حق با پیرمرده. اون همیشه در حال ظلم و ستم به مردمش بوده و هیچ کار نیکی انجام نداده. اون شب به قصرش برگشت و تا صبح بیدار موند و به حرفای پیرمرد فکر کرد. روز بعد پرنده رو برداشت و به سرزمین هیران رفت. ماجرا رو برای پادشاه دارشان تعریف کرد و از او عذر خواهی کرد. پادشاه با مهربانی رفتار کرد و گفت دوست من تو هم میتونی سرزمینت رو به درستی اداره کنی. فقط باید یاد بگیری که به جای خرافات از عقلت استفاده کنی. پادشاه چکا چند ماه در سرزمین ایران موند و از دارشان روش درست اداره کردن کشور رو یاد گرفت. پس از اون به کشورش برگشت و با استفاده از راهنمایی‌های داشان سرزمین خودش رو ساخت و آباد کرد. از اون به بعد دیگه به مردم ظلم نکرد. راستی، روش درست زندگی کردن رو چطور میشه یاد گرفت؟